روی فرقان الذين نزل الفرقان ولى عبده ليكون للعالمين با الله رحمت است با برکت و بزرگ است کسی که فرقان را بر بندهش نازل کرد تا حشدار دهندهی برای همه جهانیان باشد همان کسی که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن اوست و هیچگاه فرزندی اختیار نکرده و شریکی برای خود در امر اداره آفرینش بر است خدایی که همه چیز را خلق کرد و به دقت اندازه گیری نمون. آنها را به اندازه و ظرفیت مناسب آفریده است اما آنها به جای خدا معبودان دیگری برگزیدند که خلق هیچ چیزی را ندارند در حالی که همشان مخلوقند و نمی توانند مالک سود و زیان خود باشند حتی مالک هیچ مرگ و زندگی و رستاخیزی نیستند و کسانی که نسبت به حقایق کافرند گفتند این قرآن فقط دروغی است که او بافته است و گروه های دیگری در به وجود آوردن قرآن او را یاری دادند براستی آنچه میگویند ظلم و دروغ است گفتند این همان افثانه پیشینیان است که او از روی آنها رو نویسی می و هر صبح و شام به او دیکته می شود. بگو قرآن را کسی نازل کرده که اسرار آسمان ها و زمین را می داند و حقیقتاً آمرزنده و باگذشت است و گفتند این چه پیامبری است که قضا می خورد و در بازار راه می رود؟ چرا فرشتهای بر او نازل نمی شود تا با هم هشدارهای الهی را برسانند؟ چرا از آسمان گنجی برایش فرونه می و چرا باقی ندارد تا از آن بهره مند شود و ظالمان گفتند شما فقط یک مرد جادو شده را پیروی میکنید ببین برای تو چگونه مسئله ها و داستان ها می سازند بیشک آنها گمراه شدند و توانایی یافتن راه درست را ندارند با برکت و بزرگوار از خدایی که اگر بخواهد بهتر از اینها را به تو می دهد بهشت که نهرها آن جاری باشد و قصرهای مجللی برایت ایجاد کنند. نه اینها قیامت را انکار کردند و ما برای هر کس که قیامت را انکار کند آتش سوزانی مهیا کردیم هنگامی که از دور آتش دوزخ را ببینند جوش و خروش آورش را خواهند شنید هنگامی که کت بسته در گوشه یزان گرفتار شوند به فریاد مرگ خیش را خواستار شدند امروز نه فقط یک بار بلکه بارها مرگ خیش را طلب کنید بگو آیا این وضعیت بهتر است یا بهشت جاودانی که به ارمد گزاران حریم الهی وعده داده شده است بهشتی که بیشک پاداش اعمال و سرنوشت نهایی آنها خواهد بود همواره در آنجا هرچه بخواهند مهیاست و این وعده است که انجامان بر عوده پروردگارت است روزی که خدا هم آنها و هم معبودهای دروغینشان را محشور کند دانها دا گوید آیا شما این بندگان مرا از راه حق گمراه کردید یا خودشان راه حق را گم کردند گوید پاک و منزدهی تو سزاوار ما نیست که جست و دوست و تکیگایی برگذینید تو خود آنها و نیاکانشان را از نعمتهای دنیاوی برخوردار کردی آنچنان که از یاد تو غافل شدند و در نتیجه حلاک گشتند خدا گوید دیدید که این معبودهای دروغین ادعایتم را تکزیب کردند اکنون نمیتوانید عذاب الهی را از خود دور کنید و نمیتوانید یاوری بیاوید بدانید هر کس از شما ظالمانه زندگی کند عذاب بزرگی به او چشانیم هیچ پیامبری را قبل از تو نفرستادیم مگر که آنها هم غذا میخوردند و در بازارها راه می‌رفتند. بدانید که شما را مایه آزمایش یک دیگر قرار داده اید آیا صبر بر آن دارید بدان که پروردگارت بیناست و کسانی که امید و ایمانی به دیدار ما ندارند، گویند چرا فرشته بر ما نازل نمی‌شوند، چرا پروردگارمان را نمی‌بینیم، حقیقتا خود را بزرگ پنداشتند و گستاخی را از حد گزرندند روزی که فرشتگان را ببینند آن روز برای مجرمان قطعا خوشایند نخواهد بود و بیدرنگ خواهند گفت به ما امان دهید و از ما سرف نظر کنید به سراغ عملکردهایشان می روید. و آنچرا که انجام دادند چون گباری در هوا می پراکنی در آن روز مقر و جایگاه اهل بهشت از همه بهتر و نیکوتر است. روزی که آسمان ها با ابرها شکافته می شود و فرشتگان نازل گردند. حکومت و فرمان روایی در آن روز حقیقتا از آن خدای رحمان است. چون این روزی قطعا بر کافران سخت و طاقت فرساست روزی که ظالمان از فرد پشیمانی دستان خود را به دندان گزند و گوگند کاش با پیام بر راه نجات را پیش می گرفتی. ای وای بر من کاش فلانی را به عنوان دوست و تکیگاه خود انتخاب نمی‌کردم. کردم مرا از یاد خدا غافل کرد آن هم بعد از آن که حق به سراغم آمده بود حقیقتا شیطان همواره خار کننده انسان بوده است و پیامبر گوید پروردگارا این قوم منم که قرآن را متروک و محجور گذاشتند و این چونین برای هر پیامبری دشمنی از گناهکاران قرار داده ایم. اما بدان که برای هدایت و یاری تو پروردگارت کافی است کافران گوید چرا این قرآن به یکباره بر او نازل نشده است در این است که قلب تو را به واسطه آن همواره محکم و باثبات گردانی و به همین سبب آن را به آرامی و به ترتیب بر تو و آنها هیچ مثلی را برای تو نمیسازند و هیچ سخنی در رد تو نمیآورند مگر آنکه پاسخشان را با ترین سخن و بهترین بیان بیاوری. کسانی که بر چهره واقعیشان به سوی جهنم محشور می شود بیشک آنها بدترین جایگاه را دارند و از همه گمراه ترند. ما به موسی کتاب دادیم و برادرش هارون را به عنوان مساعد همراهش راهش کردیم و به آنها گفتیم به سوی گومی که آیات ما را تکذیب کردند رهسپار شوید و سرانجام همه تکذیب کنندگان حق را به سختی حلاک کردیم و قوم نو را هنگامی که پیامبران را تکذیب کردند غرقشان کردیم تا از آنها عبرتی برای مردم به وجود آوریم بدانید که برای ظالمان عذاب دردناکی تدارک دیده ایم. همچنین قوم عاد و سمود و اصحاب رس و مردمان دیگری را که میان آنها بودند حلاک کردیم ابتدا برای همشان مسئله ها آوردیم تا حقاویق را بدانند چون سودی نکرد همشم را نیست و نابود کردیم آنها از کنار شهری که باران بدی بر آن باریده بود گذشتند آیا عذاب الهی را ندیدند؟ چرا دیدند؟ آنها به روز قیامت امید و اعتقادی ندارند هنگامی که را میبینند به تمسخرت میگیرند و میگویند این همان کسی است که خدا پیام برش اگر ما نسبت به پرستش خدایان من استقامت نبرزیم او ما را گمراه خواهد کرد هنگامی که عذاب الهی را ببینند خواهند فهمید چه کسی گمراه تر است آیا کسی که هوای نفسش را خدای خود قرار داده دیده ای؟ آیا تو میتوانی از او دفاع کنی؟ آیا گمان می کنی اکثر آنها حقایق را می و درک می کنند؟ آنها چون چهار پایانند، بلکه از آنها نیز گمراهترند آیا نمی که خداوند توسط نور چگونه سایه را می کشد کوتاه و بلند می اگر می‌خواست می‌توانست می, می آن را ساکن به یک اندازه کند، اما آفتاب را دلیل آن قرار دادید. ما آهست آهستان سایه را جمع می کنی. او کسیست که شب را چون پوششی برای شما قرار داد و خواب را مایه آرامشتان گرداند و روز را زمان کار و فعالیت اوست که قبل از نزول رحمت خود بادها را چون پیک مجدرسان میفرستد تا از آسمان آبی پاکیزه نازل کنی تا به واسطه آن سرزمین های مرده را حیات بخشیم و چهار پایان و بسیاری از مردم را که آفریده این سیراب نماییم. ما این گونه آیات را به صورتهای گوناگون برای آنها بیان کردیم تا تفکر کنند و پند بگیرند اما اکثر مردم جز ناسپاسی کاری نمی کنند. اگر سرا می دانستیم برای هر آبادی پیامبروش دهنده ای میفرستادی. از منکران حقیقت اطاعت مکن بلکه به وسیله قرآن جهاد بزرگی را علیشان آغاز کن اوست که دو دریایی را کنار هم قرار داده که یکی آب شیرین و گوارا و دیگری شور و تلخ است در حالی که ما بین آنها مانع و حائلی گذاشته تا مخلوط نشود او است که انسان را از آب آفرید و برای او نسب و سبب قرار داد تا باعث ازدیادشان شود بدان که پروردگار تو تواناست به جای خداوند چیزهایی را میپرستند که نه نفعی به آنها میرسانند و نه آسیبی به آنها می زمند. بدانید که اهل کفر همواره در مقابل پروردگارشان پشتیبان یکدیگرند. ما فقط تو را به عنوان مجدد دهنده به حشدار دهنده فرستاده ایم بگو من به خاطر انجام رسالتم از شما مزدی نمیخواهم و این کار را برای آن میکنم تا هر کس به راغی به سوی پروردگارش بیاود و علی الحیی لا یموت و و کفادهی به خبیرا به زندهی که هرگز نمیمیرد توکل کن و برای ستایش او تسبیح گوی همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است کسی که آسمان ها و زمین و آنچرا در میان آنهاست در شش روز آفرید سپس به عرش پردا. این خدای رحمان است پس از او بپرس تا آگاه شوید. هنگامی که به آنها گفته شود خدای رحمان را سجده کنید گوید خدای رحمان دیگر کیست چرا باید کسی را که تو دستور میدهی سجد کنید و به بر نفرتشان افزوده می شود؟ با برکت و بزرگ است کسی که در آسمان برجهایی هایی و در میان آنها چراغی روشن و ماه تابانی بیافرید او کسی است که شب و روز را جانشین یک دیگر قرار داد برای آنها که میخواهند پند بگیرند و گذار باشند بندگان خدای رحمان کسانی هستند که با فروتنی روی زمین راه می‌روند بنگامی که نادانان آنها را مورد خطاب قرار دهند جز سلام چیزی نمیگویند و کسانی که شب را به یاد پروردگارشان در سجده و بیامند و کسانی که میگویند پروردگار را عذاب دوزخ را از ما دور فرما زیرا عذاب آن سنگین و پیوسته است بیراستی جهنم بد مکان و قرارگاهی است و کسانی که چون دست به انفاق و بخشش میزنند زیاده روی نمی کنند و کم نیز نمی دهند و همواره بین این دو امر متعادل رفتار می کند. و کسانی که برای خدا شریک دیگری واقع نیستند و کسی را که خدا جانش را محترم دانسته نمی مگر بر اساس قوانین حق و زنا نمی کند که هر کس چون این کند جزاگش را می بیند. عذاب چون این کسی در روز قیامت مضاعف می شود لَبَوْخَري جاودانه در آنجا خواهد ماند الا من تاب و امن و عمل عمل صالحا فاولائك يبدل الله سيئاتهم حسنا و كان الله غفورا مگر کسی که توبه کند و به حقایق ایمان بیاورد و عمل کرد شایسته و مفید داشته باشد بیشک اینان کسانی هستند که خداوند گناهانشان را به نیکی ها تبدیل می کند زیرا خداوند آمر زنده و باگذشت است کسی که توبه کند و دست به کار نیک زمد بداند که خدا به شایستگی توبه را میپذیرد و کسانی که به دروغ شهادت نمیدهند دهند و هنگامی که از کنار کار بیهوده و ناپسندی میگذرند گذرند و از آن گذر میکنند. و کسانی که چون آیات پروردگارشان برانها خوانده شود کر و کور روی آن نمی افتند. و کسانی که می گویند پروردگاه وجود همسران و فرزندان را مایه روشنی چشم ما قرار ده و ما را پیشوای پرهیزکاران کاران کن همه اینان کسانی هستند که به خاطر صبر و استقامتی که کردند گرفه بهشت را پاداش خواهند گرفت و در بهشت با درود و سلام روبرو خواهند شد جو دونه در آنجا خواهند ما چه جایگاه و, و مکان خوبی است بگو اگر دعای شما نباشد پروردگار من برای شما ارزش قائل نیست زیرا آیاتش را تکذیب کردید و به زودی عواقب این تکذیب دامنگیرتان خواهد شد قل ما بی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف صدق الله العلي بلند ازیم کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و علیه و سلم